لورولو بی بیقراری زمین را تماشا می کند. روز میگذشت و اوریون در خواب ژرف بود و حتی سگها هم کمی دورتر در لانه هاشان در سکوت لمیده بودند و آمدن و رفتن مردم و گاری ها در پایین هم هیچ کاری به کار جن نداشت. لورولو رفته رفته احساس تنهایی کرد. جمعیت جنهای ای در دره های کوچک و تنگشان چنان زیاد است، که هیچ کدام احساس تنهایی نمی کنند در آنجا خاموش مینشینند و از زیبایی سرزمین پریان یا اندیشه های گستاخانه خودشان لذت میبرند یا در لحظات نادری که سرزمین پریان از آرامش ژرف طبیعیش بیرون میآید صدای خندهشان دره را فرا میگیرد. در آنجا تنها تر از خرگوش ها نیستند اما دم در تمامی دشتهای انسانها، فقط یک جن وجود داشت و آن جن احساس تنهایی می در کبوترخانه در ده پایی در انبار یونجه باز بود و حدود شش پا از آن بالاتر قرار داشت. نردبانی با آهن به دیوار انبار یونجه متصل بود اما هیچ چیز با کبوترخانه ارتباط نداشت تا گربه نتواند به آنجا برود. از درون کبوترخانه زمزمه زندگی فراوان می آمد که جن تنها را جلب کرد. پرش از این در به آن در برایش دشوار نبود. با شیوه معمولش و با نگاهی گستاخ و خوش آمد جویانه در کبوترخانه خانه فرود آمد. اما کبوترها بال زنان از پنجره بیرون پریدند و جن باز تنها ماند. تا کبوتر خانه را دید از آن خوشش آمد. از نشانه زندگی گروهی، هزاران خانه کوچک سنگی و گچی، هزاران پر و بوی نا خوشش آمد. از آسودگی که هنسال کبوتر خابالود خوشش آمد و از تارهای عظیم انکبوت که گوشه ها را پوشانده و سالهای سال غبار را در خود نگاه داشته بودند. نمی دانست تار انکبوت چیست چون هرگز آنها را در سرزمین پریان ندیده بود اما کار زریفشان را تحسین می کرد. سن و سال کبوترخانه که گوشه ها را از تار انکبوت پوشانده و تکه های گچ را از دیوار کنده و آجرهای سرخ زیرشان را نمایان و توفالهای سقف و حتی سنگهای بالای آن را برهنه کرده بود به این مکان رویایی حال و هوایی شبیه آرامش سرزمین پریان داده بود اما لرولو در زیر و پیرامونش متوجه بیقراری زمین شده بود حتی نور آفتاب که از سوراخ‌های تهویه به روی دیوار میتابید حرکت میکرد کمی بعد صدای بال کبوترهای که باز میگشتند و صدای برخورد پاهاشان بر روی سقف سنگی بالای سرش به گوشش رسید. اما وارد خانهشان نشدند. دید که سایه این سقف به همراه سایه های بیقرار کبوترهای نشسته بر لبهش بر سقف دیگری در زیر پایش افتاده است. گلسنگ های خاکستری و تکله های منظم و گرد گلسنگ های تازه رو بر روی این توده ی بیشکل خاکستری را دید که بیشتر سقف زیرین را پوشانده بودند. شنید که اردکی آهسته شش هفت بار صدا زد. صدای مردی را شنید که به استبل پایین رفت و اسبی را بیرون آورد. سگی بیدار شد و پارس کرد. چند چه گرانده شده از برجی با صداهای گوشخراش در هوا پرواز می کردند. ابرهای عظیمی را دید که شتابان از بالای تپههای دوردست میگذشتند. صدای کبوتری وحشی را شنید که از درختی در همسایگی صدا میزد چند مرد صحبت گذشتند و پس از مدتی با شگفتی آنچه را که در دیدار پیشینش از ایرل متوجه نشده بود دریافت. این که حتی سایه های خانه ها حرکت می کردند. چون سایه سقفی که در زیرش نشسته بود، کمی بر روی سقف زیرین و بر روی گل های خاکستری و زد حرکت کرد. جنبش و دگرگونگی همیشگی با شگفتی این جنبش و دگرگونی را با آرامش ژرف خانه مقایسه کرد. جایی که لحظه ها آهسته در از سایه های خانه ها در اینجا حرکت می و نمی‌گذشتند، مگر آنکه تمامی رضایت نهفته در هر لحظه توسط تمامی موجودات سرزمین پریان از آن بیرون کشیده شود. و سپس کبوترها بال و پرزنان بازگشتند از نوک شیروانی های بلند ترین برج ایر که مدتی بر آن پناه گرفته بودند و در بلنده و در برابر موجود جدیدی که از آن ترسیده بودند احساس امنیت می کردند بازگشتند و لبه پنجره های کوچکشان نشستند و یک چشمی جن را تماشا کردند، برخی به تمامی سفید بودند، اما کبوترهای خاکستری توقی به رنگ رنگین کمان داشتند که کمتر از رنگهای سازنده شکوه سرزمین پریان دوست داشتنی نبود. و هنگامی که مشکوک او را تماشا می کردند که بی حرکت در گوشه نشسته بود، هوس همنشینی دلپذیر آنها در دل لورلو نشست. هنگامی که این فرزندان بیقرار هوا و زمین همچنان به درون نیامدند، سعی کرد آنها را با بیقراری که به آن عادت داشتند و باور داشت تمام مردمی که در دشتهای ما زندگی می کردند از آن لذت خواهند برد نرم کند ناگهان از جا جهید بر روی لانه کبوتر سنگی بر روی بالای دیوار پرید از آنجا به سوی دیوار بعدی پرید و دوباره به زمین آمد اما سر و صدای بال زدن کبوترها بلند شد و دوباره رفتند و کم کم آموخت که کبوترها سکون را ترجیح می دهند. کمی بعد دوباره صدای بال زدن و بازگشت آنها بر روی سقف شنیده شد پاهایشان دوباره بر ها فرود آمد اما تا مدت درازی به خانه برنگشتند و جن تنها از پنجره آنها به بیرون و شیوه های زمین می نگریست گنجش که کوچکی را دید که بر روی شیروانی پایینی نشسته بود تا زمانی که رفت تماشایش کرد و سپس دو بلبل به سوی دانه هایی آمدند که بر زمین افتاده بود آنها را هم تماشا کرد هر کدام برایش جانور تازه‌ای بودند و تماشای هر حرکت بلبل ها برایش کمتر از هنگامی که ما با پرنده ناشناختهی روبرو شویم جالب نبود هنگامی که بلبل ها رفتند اردک دوباره و چنان سنجیده صدا زد که تا ده دقیقه بعد لورولو سعی میکرد منظورش را بفهمد و هرچند پس از آن چیزهای جالب دیگری توجهش را جلب کردند اما مطمئن بود که اردک میخواست چیز مهمی می بگوید. سپس زاخچه دوباره آمدند اما صداهایشان بیمعنا بود و لورولو چندان توجهی به آنها نکرد. مدت درازی به صدای کبوترها، که بر سقف نشسته بودند و نمیخواستند به خانه بازگردند گوش داد سعی نمی آنچه آنچرا که میگفتند تفسیر کند اما از این به بشیره خود کبوترها راضی بود احساس می کرد داستان زندگی را باز میگویند و اینکه همه چیز روبراه هست. راه است که به صدای صحبت آهسته کبوترها گوش می داد، احساس کرد که زمین بیواست عمر درازی را پشت سر گذاشته باشد بر فراز سقف‌ها درختان بلند قد برافراشته بودند، به جز بلوط همیشه سبز و برخی از درختان قان و کاج‌ها و سرخدارها و پیچکی که از طنه آنها بالا رفته بود همهشان بی‌برگ بودند، اما آلش ها در حال جوان زدن بودند و نور آفتاب بر جوانه‌ها و برگ ها میدرخشید و چشمک میزد و پیچک و درخت قان میدرخشید. نسیمی گذشت و دوری از اجاقی در نزدیکی را با خود جابجا جا کرد. لورولو در دور دستها دیوار خاکستری بلندی را دید که باقی خفته در آفتاب را در بر گرفته بود و در نور آفتاب پرواز ای را دید که با رسیدن به باغ فرود آمد و سپس دو طاووس را دید که خرمان سایه های سایه‌های سقف‌ها را دید که بخش پایینی درخت‌های درخشان را تیره می‌کردند. صدای خروسی را از جایی شنید و سگی دوباره صحبت کرد و سپس صدای شرشوری ناگهانی بر بام شنیده شد و کبوترها ناگهان تصمیم گرفتند به خانه بازگردند دوباره بر لبه های کوچکشان نشستند و یک چشمی به جن نگاه کردند لورولا این بار کاملا بی حرکت نشست و کمی بعد کبوترها هرچند فهمیده بودند که او به هیچ چهی از آنها نیست توافق کردند که او از طایفه گربه ها نیست و سرانجام به خانه های کوچکشان بازگشتند و داستان های شگفتنگیز کوهنشان را ادامه دادند و لورولو دلش میخواست با داستان های جنها به آنها پاسخ دهد با گفتن از گنج های سرزمین پریان اما دریافت که نمیتواند آنها را وادار کند زبان جنها را بفهمند بنابراین نشست و به صحبت های آنها گوش داد. تا آنکه به نظرش رسید میکوشند بی بیقراری زمین را فرو بنشانند و اندیشید شاید دارند با افسونی خواباور تلسمی بر علیه زمان اجرا میکنند که نتواند به آشیانه هایشان آسیب برساند چون هنوز نیروی زمان برایش روشن نشده بود و نمیدانست هیچ چیز در دشت های ما توانایی نگاه داشتن زمان را ندارد همین آشیانه های کبوترها بر روی ویرانه های آشیانه های قدیمی ساخته شده بود بر روی لایه بیجانی از شکسته های اشیایی که با گذر زمان در آن کبوترخانه پدید آمده بود همچنان که لایه های زمین از ویرانه های تپه ها ساخته شده است جن هنوز چنان ویرانگی گسترده و ناایستایی را درک نمی کرد. چون ادراک هوشیارش تنها به کار راهنمایی‌اش در آرامش سرزمین پریان می آمد. و بنابراین خود را با موضوع کوچکتری سرگرم کرد. از آنجا که رفتار کبوترها را دوستانه دیده بود، با پرشی به انبار یونجه خودش رفت و با دسته ای کاه بازگشت و آن را در گوشهای گذاشت تا احساس راحتی کند. کبوترها که همه این جنب و جوش را دیدند، دوباره یک چشمی به او نگاه کردند و گردن کشیدند. اما سرانجام تصمیم گرفتند جن را به عنوان یک میهمان بپذیرند و بر روی توده کاهش دراز کشید و به تاریخ زمین گوش داد که به گمانش داستانهای کبوترها درباره آن بود هرچند زبان آنها را نمیدانست. اما روز میگذشت و گرسنگی بسیار زودتر از آن به سراغش آمده بود که در سرزمین پریان به سراغ جنها ها آید در سرزمین پریان هرگاه می شد کافی بود دستش را دراز کند و توت‌های پایین درختان روییده در جنگل‌های لبه درهشان را بچیند و به خاطر اینکه جنها هرگاه گرسنه شوند که به ندرت پیش می‌آید از این میوه‌های شگفت‌انگیز می‌خورند و این میوه‌ها را جنتوت نامیدند از کبوترخانه بیرون جهید و در اطراف به دنبال جنتوت گشت هیچ توتی در کار نبود چون همانطور که ما خوب می‌دانیم توتها فقط در یک فصل میرویند این یکی از نیرنگ های زمان است اما اینکه تمامی توت های روی زمین باید برای دوره از بین بروند برای جن غریبتر از آن بود که بتواند درک کند تمام پیرامونش را کلبه ها و کشورها فرا گرفته بودند و کمی بعد موش صحرایی را دید که در کپر تاریکی قوز کرده بود هیچ چیز از زبان موشها نمیدانست اما عجیب است که هرگاه دو نفر به دنبال یک چیز باشند تا همدیگر را ببینند هر کدام می فهمند که آن دیگری چرا می جوید. ما تا حدودی نسبت به کارهای دیگران نابینا هستیم اما هرگاه با کسی برخورد کنیم که به کار خود ما مشغول است خیلی زود، به گونه ای ویژه و بدون اینکه به ما گفته شود میفهمیم. فهمیم. و لحظه ای که لورولو موش را در کپرش دید گوی می دانست در جستجوی غذاست. بنابراین آهسته موش را دنبال کرد و کمی بعد موش به ای بلوت رسید و باز کردن آن بیشتر از کندن پوست یک خوش نخود طول نکشید و کمی بعد مشغول خوردن بلوط ها بود جن به زبان جنها گفت خوشمزه است؟ موش مشکوک به اونه گریست و متوجه شباهتش به انسان و از سوی دیگر عدم شباهتش به سکه ها شد اما در کل ناراضی بود و پس از نگاهی طولانی در سکوت برگشت از کپرش بیرون رفت. سپس لورولو شروع به خوردن بلودها کرد و آنها را بسیار خوشمزه یافت. هنگامی که به کافی بلود خورد به کبوترخانه بازگشت و مدت درازی در کنار یکی از پنجره‌های کوچک نشست و از فراز بام‌ها ها شیوه جدید گذر زمان را تماشا کرد و سایه روی درختان بالاتر رفت. و درخشش درختان اقان و برگ پایینی از بین رفت و سپس رنگ برگ پیچک و بلوت از نقرهی به روشن گرایید و سایه باز بالاتر رفت تمامی جهان سرشار از دگرگونی بود پیرمردی باریشی سفید و بلند و باریک آهسته به سوی لانی سکها آمد و در را باز کرد و به درون رفت و گوشتی را که از کپری با خود آورده بود به ها داد. با فریاد ها غروب به تنین درآمد و کمی بعد پیرمرد دوباره بیرون آمد و حرکت آهستش برای جن مراقب نشانه دیگری از بیقراری زمین بود. و سپس مردی آهسته عصبی را به استبل زیر کبوترخانه برد و دوباره رفت و اسب را در حال خوردن علوفه ترک کرد. اکنون سایه‌ها بر دیوارها و سقف‌ها و درختان بالاتر آمده بودند نور دیگر تنها بر نوک درختان و نوک برج ناقوس بلند میتابید اکنون جوانه‌های سرخ روی آلش‌های بلند همچون یاقوت‌های کبود می‌درخشیدند و تیرگی ژرفی در آسمان آبی روشن پدیدار شد و ابرهای کوچکی که با تنبلی شناور بودند به رنگ نارنجی آتشگون درآمدند. درآدند. از زیر ابرها میگذشتند و به سوی خانههایشان بر توده ای از درختان در پایین تپه ها میرفتند، منظره باصفایی بود و اما برای جن که در کبوتر خانه کپک زده و در میان هزاران پر نشسته بود و تماشا میکرد، صدای کلاقها و تعدادشان که آسمان را میپوشاند، صدای پی در پی و کسل کننده خوردن اسب، صدای خوش گامهایی که به خانه باز می گشتند و صدای بسته شدن آهسته دروازه ها گواهی بر این مینمود که در دشت که میشناسیم هرگز چیزی استراحت نمی کند و روستای خواب آلود تنبلی که در دره ایرل خواب میدید و اینکه مردمش از سرزمین های دیگر نیز مانند داستان ارل خودشان چیزی نمیدانستند، در نظر آن جن ساده همچون گردبادی از بیقراری می نمود و اکنون نور آفتاب از بلندترین مکانه ها هم رفته بود و محتابی چند روزه بر کبوترخانه می تابید. ماه از دیدگاه پنجره لورولو دیده نمی شد اما هوا را با تهرنگ شگفتی آکنده بود و همه این دگرگونی ها او را سردرگم می کرد و دمی به بازگشت به سرزمین پریان اندیشید اما حوث شگفت زده کردن جنهای دیگر دوباره در اندیشهش آمد در حالی که این حوث را در دل داشت از کبوترخانه بیرون خزید و رفت تا اوریون را پیدا کند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها هایی از غول ها و کتوله ها ماشره از جادوگر ها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 کانال تلگرامی هزار افسان افثان. داستان‌های افسانه‌ای صوتی